عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. بسیار خوشحالیم که تصمیم گرفتید در این دوره بررسی کتاب مقدس با ما همراه باشید. بعد از بررسی عهد قدیم به بررسی اناجیل در عهد جدید رسیدیم. متشکریم که وفادارانه در این دوره با ما همراه هستید. ما در حال حاضر انجیل متا رو با هم بررسی می و به قسمتی رسیدیم که به اعتقاد خیلی ها بزرگترین گفتگوی ایسا هست با هم به درس امروز معلممون گوش میکنیم به دانشکده یک کچک کتاب مقدس خوش آمدید ما بررسی انجیل متا رو شروع کردیم و حالا بزرگترین گفتگوی ایسا رو که به سر کوه معروف است به طور خلاصه بررسی میکنیم ایسا به دنبال سخنانش با مسائل زیبا و استعاره ای شخصیت مسیح رو به تصویر میکشه تا به ما نشون بده تأثیر شخصیت مسیح بر فرهنگ غیر مسیحی چگونه هست کتاب مقدس میگه شما نمک جهانید لکن اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکین شود دیگر مصرفی ندارد جزان که بیرون افکنده پایمال مردم شود شما نور عالمید، شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمیافروزند تا آن را زیر پیمانه نهند بلکه تا بر چراغدان گذارند آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی میبخشد همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند گمان مبرید که آمده تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم نیامدهام ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم زیرا هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خانده خواهد شد. از شما دعوت میکنم به سر کوه برگردیم، به جایی که عیسی داره موعظه میکنه. منظور از گرده همایی عیسی با شاگردانش این بود که نشون بده چطور میتونیم بخشی از راه حلها و جواب او برای نیاز انسان دنیا باشیم. در بررسی فضای این تعلیم دیدیم که عیسی مردم رو به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که همراه او بر بالای کوه بودند و بخشی از راه حلها و جواب او بودند، و گروه دیگر کسانی بودند که در پایین کوه بودند و نیازها و مشکلاتی داشتند. در محتوای تعالیم مسیح دیدیم که یک مسیحی شدن و پیرو مسیح شدن شامل رفتارهایی هست که ایسای مسیح اونها رو در هشت خوشابه حال نشون داده بعد عیسی چالشی رو در رابطه با تأثیر شخصیت مسیحی بر فرهنگ غیر مسیحی پیش روی ما قرار میده عیسی این چالش رو با ارائه چهار تمثیل به ما نشون میده. شما نور و نمک این جهان هستید. شما شهری بر بالای تپهای هستید که نمیشه مخفی کرد. شما چراغی در چراغدان هستید. دقیقاً ایسا در بالای کوه داره چی میکنه؟ برخی از محققین اعتقاد دارند که هشت خوشابهال در معزه سر کوه عملاً متن معزه هست و بقیه متا پنج، شش و هفت کاربورت های اون هستند چهار تمثیل کاربورت ها رو نشون میده به عبارت دیگه دوازده آیه اول متا پنج تعالیم و بقیه کاربورت هستند. وقتی عیسی چالشی رو پیش روی ما میذاره که مربوط به چگونگی تأثیر شخصیت مسیحی بر فرهنگ غیر مسیحی هست او چهار مثل به ما میده منظور او از اونها چیه؟ بذارید نگاهی اجمالی به یکایه که اونها بندازیم شما نمک جهان هستی منظور او از این چیه من گمان می کنم ساده ترین نظری که او از این داشت عنوان این حقیقت بود که در اون روزها چون یخجالی وجود نداشت تنها روشی که میشد گوشت رو نگه داشت نمک آلود کردن اون بود احتمالا این اساسی ترین منظور عیسی از نمک بود اگر این تعبیر و کاربرد درستی از تمثیل عیسی باشه عیسی داشت چیزی در مورد دنیا اظهار می کرد و چیزی درباره شاگردان بیان می کرد. با استفاده از این تمثیل عیسی داشت می گفت که دنیا مثل گوشت گندیده و متعفنی هست و همینطور می گفت که شاگردانش مثل نمک هستند که باید درون گوشت نفوذ کنند تا مانع فساد گوشت بشند بنابه گفته عیسی، دنیا فاسد بود تنها راهی که میشه دنیا را از فساد حفظ کرد به وسیله شاگردان عیسی مسیح هست که این رفتارهای زیبا رو دارند عیسی اونها رو به طرف اون جمعیت فرستاد منظور عیسی این بود که همونطور که نمک رو وارد گوشت میکنند تا مانع فساد اون بشن شاگردان من باید وارد این جهان بشن اونها باید با مردم این جهان در هم بیا این مانع فساد دنیا خواهد شد اگر این تعبیر و کاربرد درست باشه پس عیسی آشکارا چیز بسیار جدی داره میگه یعنی اینکه شاگردان او حفاظت کننده هستند زبان یونانی نشون میده که عیسی داره میگه فقط و فقط شما نمک جهان هستید. به این دلیل من به این بیان عیسی در مورد شاگردانش جدی و حتی متأسبا میگم به قول عیسی تأثیر شخصیت مسیحی میتونه دنیا رو از فساد اخلاقی حفظ کنه. حداقل یک تفسیر و کاربرد ای در مورد این استاره وجود داره. کلمه حقوق در زبان انگلیسی کلمه مرکبی هست که به معنی پول نمک هست. دو کلمه پول نمک مربوط به زمان امپراتوری روم هست. امپراتوری روم قصد داشت که مردم دنیا رو کنترل کنه و اونها درباره نمک اطلاعاتی داشتن. امپراتوران می که هیچ موجود زندهای بدون نمک نمی تونه زنده بمونه. شما معمولا توی مزاره می بینید که سنگ نمکی قرار دادن که گاوها بتونن دون رو بلیسن. چون گاوها هم بدون نمک نمی تونن زندگی کنن. من خادمی رو میشناختم که سی و پنج سال کنار رودخانه کنگو زندگی میکرد. او میگفت که دو بار در سال مجبور بود که سفر کنه. سی و پنج روز به طرف پایین رودخانه میرفت و سی و پنج روز به طرف بالای رودخانه تا وسایل مورد نیازش رو تهیه کنه. یکی از لوازمی که او نیاز داشت تهیه کنه نمک بود. چون بدون نمک نمیتونید زندگی کنید. حالا اگر وقتی ایسا گفته شما نمک این جهان هستید و منظورش این بوده در واقع چیز بسیار بزرگتری در مورد شاگردانش و دنیا گفته عیسی به شاگردانش میگه آیا اون افرادی که پایین کوه هستن میبینید اونها زنده نیستن فقط به خاطر علایم حیاتی که دارن دلیل نمیشه که اونها زنده باشن اونها برکت نیفتند. اونها به لحاظ روحانی کامیاب نیستن و در ناحیه فیض قرار ندارند. اونها اونطور که پدر من قصد داره حیات ندارند اما اگر شما بفهمید که من چی میگم و چیزی رو که تعلیم دادم تجربه کنید شما حیات خواهید داشت و منبعی خواهید بود که مردم بتونند از اون حیات بگیرن پس بروید پایین و با اون مردم قاطی بشید و منبع حیات بخشی باشید که مردم دنیا بتونند از شما حیات بگیرن عیسی بیانیه قدرتمندی درباره دنیا و شاگردانش ابراز کرده شبان نوجوانی رو میشناختم که با یه گروه مطالعاتی به قاهره رفت او مسیر خروج بنی اسرائیل تا به سرزمین مقدس رو دنبال کرد. هوا العاده گرم بود. همه چیز در مصر خشن بود و این شامل کسانی هم میشد که اونا ملاقات کردند. یک روز نزدیک غروب وارد اتاق خنکش در طبقه هفدهم هتل شد. او روز سختی رو در مصر پشت سرگذاشته بود. وقتی به آسمان قاهره نگاه می کرد به یکی از دوستانش گفت: دلم میخواد به مصر از همین بالا نگاه کنم. از طبقه هفدهم و از یک اتاق خنک بعد از اینکه دوش گرفتم بعد او با حرفی که زده بود به خودش اومد و فکر کرد فکرش رو بکن اگر خدا در مورد این دنیا اینطوری طوری فکر می کرد، اگر خدا هرگز جسم نمی پوشید و در بین ما زندگی نمی کرد، تا حالا ما جلال و فیض و حقیقت او رو داشته باشیم من الان کجا بودم؟ فرض کنید خادمین همین طور فکر کنم شما نمیتونید از یک اتاق خنک در طبقه هفدهم و از بالا به مردم نگاه کنید و نمک جهان باشید شما باید برید بیرون و در بین مردم زندگی کنید فقط وقتی با اون مردم معاشرت کنید میتونید رفتارهای شاگرد مسیح رو به اونها نشون بدید خوشا حال مسکینان در روح یعنی شما نمیتونید این رفتارهای خوب رو تولید کنید بدون روح القدس شما نمیتونید این رفتارهای خوب رو تجربه کنید و نشون بدید اما روح القدس میتونه شما باید توانایی خارق ای داشته باشید تا بتونید نمک این جهان باشید اگر روح القدس با شما باشه اون وقت شما این توانایی رو دارید که نمک این جهان برای غیر ایمانداران دشمنان و مردمان کینتوز اطرافتون باشید اما بذارید برای تاکید تکرار کنم برای انجام این کار چیز خارق العاده‌ای مورد نیاز هست وقتی عیسی داشت شاگردان رو برای تأثیر شخصیت مسیحی بر فرهنگ غیر مسیحی به چالش می‌کشید چیز دیگری هم به اونها گفت او گفت شما نور این جهان هستید عیسی در تشریح این تمثیل گفت وقتی کسی چراغی رو روشن میکنه اون رو زیر تخت خواب پنهان نمیکنه بلکه اون رو بر چراغدان میذاره تا بتونه حد اکثر نورش رو به اون خانه بده عیسی میگه که دنیا نمیدونه که در تاریکی زندگی میکنه. وقتی عیسی به خاطر اون جمعیت گریه میکنه چیزی که بیش از همه اون رو محضوم میکنه این بود که اونها مانند گوسفندانی بودند که شبان نداشتند اونها گم شده بودند و این رو نمیدونستند چیزی که قلب ایسا رو داد این واقعیت بود که اونها خبر نداشتند که گم شدهاند در پایان سه سال خدمت عمومیش ایسا به عنوان کاهن اعظم دعا کرد این دعا در باب هفدهم یوحنا ثبت شده در اون دعا ایسا هفت بار به دنیا اشاره میکنه وقتی می دعا میکنه کنه طولی نمی کشه که می فهمیم او بار دنیا رو در قلبش داره عیسی نگران تمام دنیاست. وقتی عیسی برای دنیا دعا میکنه و بار دنیا رو در دلش داره چیز خارق ای میگه او میگه اما من برای این دنیا دعا نمیکنم، کنم چون که اونها نمیدونند من برای این مردانی که تو به من بخشیدی دعا میکنم او برای کسانی دعا میکرد که سه سال با اونها زندگی کرده بود برای رسولان چون اونها میدونستند. او گفت من برای اونها دعا میکنم و همه چیز رو به اونها میسپارم وقتی عیسی گفت شما نور جهان هستید منظورش دقیقا این بود که اونها میدونستند در ترجمه یونانی میگه فقط و فقط شما نور جهان هستید به غیر از شما همه در تاریکی هستند حالا باید به دنیای تاریک برید و نور شما که با فیض خدا به شما بخشیده شده در اون تاریکی خواهد درخشید و شما بخشی از راه حل و جواب من خواهید بود من این تمثیل چراغ و چراغدان رو دوست دارم به طور خلاصه عیسی با این تمثیل این رو میگه قبل از اینکه بالای کوه بیایید و بخشی از راحلها و جواب‌های من بشید مانند چراغ خاموشی بودید اما حالا که نقطه عطف یک مسیحی شدن رو تجربه کردید مثل این هست که چراغ شما روشن شده حالا شما چراغی روشن هستید من چراغ شما رو روشن کردم من زندگی شما رو نورانی کردم حالا وقتی من چراغی رو روشن میکنم چراغدانی برای اون چراغ انتخاب می کنم و من اون چراغدان رو انتخاب کردم بعد از سه سالی که عیسی با اونها وقت گذاشت به اونها گفت شما مرا انتخاب نکردید بلکه من شما رو برگزیدم و مقرر داشتم که بروید و ثمر بیارید و میوه شما باقی بمونه وقتی عیسی میگه مقرر داشتم در زبان یونانی یعنی شما را در جای مناسب استراتژیک قرار دادم مثل فرمانده ای در میدان جنگ که نیروهاش رو قرار میده. این کلمه سه بار در کتاب مقدس به کار رفته. این مفهومیه که منظور عیسی در مسئله چراغ و چراغدان هست. وقتی بچه بودم بازی با لاکپشت رو خیلی دوست داشتم. من چیزی از لاک پشت روی پایه فنس ها یاد گرفتم. تا حالا لاک پشتی رو روی پایه فنس دیدید، هر بار که لاک پشتی رو اون بالا ببینید باید بدونید که، اون خودش نمیتونه اون بالا بره کسی اونو اونجا قرار داده یه ای اونو اونجا گذاشته چون اونا نمیتونن بالا برند هر مسیحی باید خودش رو مثل لاکپشتی روی پایه فنس حس کنه میتونید به اطراف نگاه کنید و بفهمید که در این دنیا به لحاظ استراتژیکی کجا قرار دارید به چراغ روی چراغدان فکر کنید به خودتون بگید من لاک پشتی روی پایه فنس هستم اگر او مرا اینجا قرار نداده بود هرگز نمی توانستم این بالا بیام رو کپوس می میتونم بگم اگه میدونستید من کجا به دنیا اومدم و چه جوری بزرگ شدم و بعد میدیدید که من امروز چیکار کنم باید می گفتید او یک لاک پشت روی پایه فنسه. او هرگز نمیتونسته این جایی که امروز هست قرار بگیره مگر اینکه کسی او رو اونجا قرار داده باشه اگر تمثیل چراغ و چراغدان رو درک کنیم همه ما باید چنین احساسی داشته باشیم عیسی در ادامه میگه شما شهری هستید که روی تپه ای بنا شده و نمیشه مخفیش کرد. اگر شما این رفتارها رو در زندگیتون داشته باشید، زندگی شما رو نمیشه مخفی کرد. چقدر باید یه جا کار کنید تا مردم بفهمند که شما مسیحی هستید. یک بار دو نفر بودند که با هم کار میکردند و با هم به صبحانه رازگاهان یک تاجر اومدند. اونا همدیگر رو سالها دیده بودند، با همدیگر صحبت کرده بودند. سه سال در هر روز کاری با هم بودند. و هیچ کدوم نمیدونستان که اون یکی مسیحیه تا اینکه اونها در مراسم صبحانه با هم روبرو شدن فکر می کنید چه مدت باید با پولس رسول کار می کردید تا بدونید او مسیحیه زندگی عیسی مثل شهری بود که بر تپهی بنا شده و نمیشه مخفیش کرد عیسی گفته که نمیشه اون رو مخفی کرد وقتی شما شاگرد قابل اعتماد عیسی مسیح باشید نمیتونید این واقعیت رو مخفی کنید که شاگرد عیسی مسیح هستید وقتی به بررسی محتوای موعظه بزرگ سر کوه بپردازیم این حقیقت آشکار خواهد شد اگر شما نور و نمک دنیا هستید نمیتونید این واقعیت رو پنهان کنید چالش پیش روی شما این هست. آیا شما شاگرد عیسی مسیح هستید اگر هستید آیا میتونید این واقعیت رو مخفی کنید که شما شاگرد عیسی مسیح هستید چیزی به نام شاگرد مخفی عیسی مسیح وجود نداره بذارید نور شما بر مردم بتابه تا کارهای نیک شما رو ببینن و پدر آسمانی شما رو تمجید نماین حالا میخوام که یک بررسی کلی از خوشاب حالها و این چهار تمثیل که قلب تعالیمی هست که به اونها معزه سرکوه میگیم داشته باشیم همونطور که قبلا اشاره کردم خوشاب حالها معزه هستن و بقیه مطالب مطالب متا 5, 6 و 7 کاربورت های اون معزه هستند. این هشت خوشاب حال زیبا به دو دسته تقسیم میشن. چنین به نظر میرسه که خطی روحانی بین چهار رومین و پنجمین حال وجود داره. چهار رفتار اول که در این حال ها شرط داده شده میتونیم بهشون رفتارهای آمدن بگیم. وقتی مرد خدا رو در عهد قدیم بررسی میکردیم یادتونه که گفتیم اونها یک آمدن به حضور خدا داشتن و بعد از اون برای کار خدا میرفتن. اونها تجربیات زیادی داشتند که شما میتونید تحت عنوان، تجربیات آمدن طبقه بندی کنید قبل از اینکه کارگزاران بزرگ خدا کارگزار بشند اونها پرستنده های بزرگ خدا میشن اونها یک آمدن پرمعنی و مسمر ثمر به حضور خدا داشتند و بعد از اون وقتی برای کار خدا می رفتند کار اونها پرمعنی و مسمر ثمر میشد خوشا ها تحت این دو عنوان تقسیم میشن چهار خوشابهال اول آمدن به حضور خدا را شرح میدند رفتارهایی که خدا در تجربیات شما در خلال آمدن به حضورش کار میکنه بعضی چیزها مثل مهارت ها میتونن به طور شخصی ایجاد بشن شما میتونید یاد بگیرید که پیانیست بزرگی بشید فقط کافیه که روزی چند ساعت تمرین کنید اما اگر خلوت دعاییتون رو رها نکنید نمیتونید شخصیت مسیحیتون رو پرورش بدید شخصیت در پایین تپه در جریان زندگی پرورش پیدا میکنه بعضی از این خوشا ها میتونن در بالای تپه یا در خلوت دعایی تحقق پیدا کنند. چهار رفتار اول اینها هستند. شما میتونید در روح مسکین یا فروتن باشید. وقتی فهمیدید در روح مسکین هستید، ماتم بگیرید و هرگز بالای تپه رو رها نکنید. شما میتونید متحد به نرم خویی باشید. میتونید گرسنه و تشنه ادالت باشید. همه اینها بخشی از آمدن شما به حضور خداست. اما نمی خوشابهال های بعدی رو بالای کوه تجربه کنید پنجمین خوشابهال اینه خوشابهال رحیمان رحمت یعنی محبت بی غید و شرط اگر شما به پایین کوه نیایید، چطور میتونید محبت بی غید و شرط رو ابراز کنید. رحیم بودن شما را از بالای کوه بر میداره و در پایین کوه بین مردم نیازمند قرار میده. شاگرد رحیم عیسی مسیح انگیزه پاکی در قلبش داره که مردم رو بی قید و شرط محبت میکنه این رابطه ای هست اگر شما میخواید یک آشتی دهنده باشید شما نمیتونید در بالای کوه آشتی دهنده باشید برای اینکه آشتی دهنده باشید باید جایی برید که درگیری هست وقتی شاگردی مورد آزار قرار میگرفت مشخص بود که به پایین تپه و به داخل جمعیت اومده جایی که مردمان و مشکلاتشون وجود داشت چهار خوشابه بعدی رفتارهایی در رابطه با رفتن هستند و چهارتهای اول رفتارهای مربوط به آمدن هستند این هش خوشا حال عیسیا میتونن به چهار جفت هم تقسیم بشن فقیر در روح در حالی که فقر در روح رو یاد میگیره ماتم میگیره کسانی که نرم خو هستند گرسنه و تشنه عدالتند رحیمان با قلبی پاک بی قید و شرط محبت کنند و آشتی دهندگان آزار می‌بینند دکتر مارتین لوید جونز معتقده که خوشابهال ها مانند بالا رفتن و پایین آمدن از کوه هست خوشابهال فقیران در روح شما رو به مسافت کوتاهی به بالای کوه میبره خوشابهال ماتمیان شما رو کمی جلوتر میبره بعد خوشابهال نرمخویان شما رو به سه چهار راه راه میرسونه و بعد گرسنگی و تشنگی به ادالت شما را به قله کوه میرسونه حالا وقتی شما بر بالای کوه هستید با ادالت پر میشید و شروع میکنید به پایین آمدن از کو. اون وقت شما مثل چی هستید؟ آیا مثل یک فریسی شریعتی هستید که کتاب رو به طرف هر کسی پرت میکنه؟ نه. شما کسی هستید که با قلبی پاک بی قید و شرط محبت میکنید. در زبان اصلی کلمه ای که برای پاک استفاده شده کاتارسایزس هست. به این معنی که قلب شما از انگیزه های خودخواهانه و علایق شخصی پاک شده وقتی به پایین کوه می رسید، شما آشتی دهنده هستید و مورد آزار قرار خواهید گرفت. به نظر من این روش زیبایی برای خلاصه کردن این خوشابهال هاست. همونطور که قبلا اشاره کردم به قول عیسی این خوشابهال ها ما رو نور و نمک این دنیا می کنه. ما رو شهری بر فراز تپی میکنه که مخفی نمیشه و چراغی بر روی چراغدان میکنه. این خوشابهال زیبا، راه حل و جواب عیسی به نیازهای بشر رو به تصویر میکشه به اعتقاد من چهار ضرورت در خدمت روحانی وجود داره که اگر میخواهید نور و نمک جهان بشید و پاسخ و راه حل ایسا بشید باید یاد بگیرید اولیش اینه من نمیتونم اما او میتونه و او با منه حالا در دو خوشا حال اول شما اولین ضرورت خدمت روحانی رو یاد میگیرید گیرید به حال فقیران در روح که در خلال یادگیری اینکه اونها نمیتونند اما خدا میتونه ماتم میگیرن فکر میکنم میتونید اون دو خوشابه حال رو اینطور جمبندی کنید من نمیتونم خداوندا من نمیتونم راه حل باشم اما تو میتونی و تو با منی سومین و چهارمین رومین حال هم با هم دست شدند نرم خویی بسته به اراده ماست دختر جوانی که تازه تبدیل شده بود میگفت شبان من نمیدونم این خواستنهای من کجا رفت وقتی او تبدیل شد خواستنهای او توسط مکاشفه ای از بین رفت. مسیحی شدن مربوط به اراده شما هست و تأثیر بزرگی بر روی اراده شما هم داره. وقتی به سومین و چهارمین خشابه حال نگاه میکنیم کنیم، خشابه حال نرم خویان که گرسن و تشنه ادالت هستند، من فکر می کنم می این دو خشابه حال را با گفتن چیزی خلاصه کنید که همه ما اگر با خدا صادق هستیم باید بگیم. من نمی اما تو می و تو با من هستی. من فکر می کنم که باید با خدا رو راست باشید. شما نمیتونید احساساتتون رو از او مخفی کنید. زمانهایی هایی است که وقتی صبح بیدار میشیم واقعا نمیخوایم اون کاری رو که خدا از ما میخواد انجام بدیم در چنین مواقعی من به او اعتراف میکنم. خدایا یا من نمیتونم و خدا میگه من میتونم و من با تو هستم من گاهی میگم خدای من نمی بعد خدا میگه این هیچ ربطی به تو نداره من میخوام و من با تو هستم پس بلند شو و ادامه بده پنجمین و ششمین رفتار شخص رحیمی رو توصیف میکنه که با قلبی پاک بی غید و شرط محبت میکنه وقتی خدا در مورد این محبت آگاپه که ذات خدا هست صحبت میکنه خدا توسط شاگردانش دانش بی غید و شرط محبت میکنه فکر می کنم میتونید پنجمین و ششمین رو اینطور خلاصه کنید من محبت آگاپه نیستم اما او هست و او با منه این چنان محبتیه که راه حل و پاسخ رو در پایین کو و یا هر منطقه سختی به دنبال داره این محبت چیزیه که شما نیستید. این نوع محبت ذات خدا هست به هر حال حیجان حقیقت عهد جدید اینه که خدا با شماست و خدا در شماست بنابراین چنان که خدا در شما هست و با شما هست و میتونه خودش رو از طریق شما متجلی کنه پس شما توانایی دارید که راه حل و جواب ایسای مسیح برای تمامی نیازهای بشر باشید. برای جمعبندی پنجمین و ششمین خوشابهال شما میتونید بگید من نیستم اما او هست و او با منه. به این دلیل من توانایی دارم که یکی از راحلها و جوابهای ایسای مسیح برای نیازهای مردم این دنیا باشم. هفتمین و هشتمین خوشابهال نتیجه عملی خدمت آشتی رو میده. من فکر میکنم میتونید اون دو خوشابهال زیبا کنید. من انجام ندادم بلکه او انجام داد چون او با من بود. هر بار که می فهمید با فیض خدا شما راه حل و یا جواب مشکلی بودید به اعتقاد من باید فروتن و مسکین در روح بشید به ابتدا برگردید و بگید من این کار رو نکردم. او انجام داد چون او با من بود. یکی از مشایخ که از معلمین بزرگ کتاب مقدس هست دکتر مانفرد گاتسکه جمله بسیار امیقی در رادیو بیان میکرد و من تصادفا اونا شنیدم او می گفت وقتی عیسی سوار بر اون کرر الاق در روز اید نخل وارد اورشلیم شد و همه اون مردم فریاد کنان می گفتن خجسته باد او که به نام خداوند میآید حالا احمقانه نبود اگه اون کرر الاق فکر می کرد که اون همه تجلیل ها برای او بود یکی از بزرگترین دامهایی هایی که بر سر راه خدمت هست چیزی که ما بهش تحسین می گیم وقتی خادمی پر ما پرسمر میگیم و دنیا موفق. وقتی خادمی پرسمره وقتی کلیسایی بزرگه و همه چی رو به راهه، یکی از دامهای خادمین تحسین هست وقتی همه مردم از اون خادم تجلیل میکنن، به قول دکتر مانفرد گاتسکه احمقانه است که اون کور رو اولاغ کوچک فکر کنه همش به خاطر او هست. به عبارت دیگه احمقانه است که فکر کنیم وسیله باید ستوده بشه. ما فقط برای پیغام وسیله هستیم. مثل یک کرو کوچک کتاب مقدس راجب دو جور کرو اولاق صحبت میکنه اولیش در کتاب اعداد یک اولاق سخنگویی هست که خدا به وسیله اون صحبت میکنه خدا نتونست کسی رو پیدا کنه که اونقدر ایمان داشته باشه که او رو ببینه یا اونقدر ایمان داشته باشه تا کانالی باشه که خدا به وسیله صحبت کنه پس به وسیله یک اولاق صحبت کرد اون یک اولاق سخنگو بود و بعد در متا 21 شما نوع ای از الاغ رو میبینید خدا داشت وارد اورشلیم میشد و به رسولان گفت که بروند و این كرو الاق خاص رو بیارن او گفت که اونها اون رو در مقابل خانه ای بسته خواهند یافت او گفت اون رو باز کنید و بیارید این امروزه مثل دزدیدن یک ماشین میمونه عیسی گفت اگه از شما پرسیدن دارید چیکار میکنید بگید خداوند به اونها نیاز داره و اونها خواهند گفت بفرمایید در خدمت شماست به اعتقاد من پیغام داستان علاغ که در متا 21 هست چیزی مربوط به مسکین بودن در روح است ببینید امروز نظریه ای هست که این رو میگه خدا کارهای خارق رو توسط افراد خارق العاده انجام میده این یک توهمه این حقیقت نداره میدونید وقتی به تاریخ کلیسای مسیح در کتاب اعمال میرسیم کتاب مقدس چی میگه کتاب اعمال رسولان به ما میگه که خدا بسیار علاقمنده که کارهای خارق رو توسط مردم معمولی انجام بده چون اونها در دسترس هستند چیزی که خدا از ما میخواد در دسترس بودن هست. عیسی مسیح هم که امروزه کلیساهاش رو بنا میکنه دنبال افراد خارق و, و قولهای مقدس نمیگرده او دنبال ایمانداران معمولی میگرده که در دسترس هستند بزرگترین توانایی در دسترس بودن آماده بودن اگر شما میخواهید راه حل و پاسخ عیسی باشید باید از امانیزم و فلسفه اومانیستی دوری کنید. اومانیزم یا انسانگرایی میگه من هستم، منتهی به من میتونم میشه. این فلسفه اقلانیه. این فلسفه میگه شما هستید و شما میتونید. همش مربوط به توانایی شما میشه. تنها چیزی که اهمیت داره توانایی شماست. شما توانایی دارید، پس برید و انجامش بدید. این چیزی نبود که عیسی در سر سرکوهش تعلیم میداد. اگر خشابه ها رو درک کنید میبینید که عیسی میگفت. او هست که منتهی به من میتوانم میشه. مهم نیست که شما کی هستید. مهم اینه که خدا کیه. مهم نیست که شما چی کار میتونید بکنید. مهم اینه که خدا چی کار میتونه بکنه. مهم نیست که شما چی میخواید. مهم اینه که خدا چی میخواد. وقتی شما نور و نمک جهان بشید اون وقت به خدا جلال میدید و میگید این کاری نبود که من انجام دادم، بلکه کاری بود که تو انجام دادی چون تو با من بودی. سالها پیش در 1950 بیلیگراهام بلافاصله بعد از اولین سفر بشارتیش کلاسی در لس آنجلس ترتیب داد. او به مدرسه ای رفت که هزار و دویست نفر دانشجوی الهیات داشت. اونها از بیلیگراهام انواع سوالات مثل این رو می پرسیدن: چقدر زمان صرف دعا کردید؟ چقدر پول خرج تبلیغات کردید؟ کلید های بزرگ شما چیه؟ من هرگز فراموش نمی‌کنم که وقتی او دستش رو به علامت پایان پرسش بلند کرد، وقتی همه آروم شدند او گفت ببینید همه شما دارید اشتباه می کنید وقتی خدا تصمیم گرفت کار کنه من فقط تصادفاً در لس آنجلس بودم به طور تصادفی اونجا بودم جلسه ای داشتم و خدا تصمیم گرفت که کاری انجام بده همینو و جزئیاتش را از من نپرسید. من فکر نمی کنم بلیگره ها امروز همون رو درد کرده باشه من فکر می کنم اگر امروز هم اینجا می بود می میگفت خدا وقتی تصمیم گرفت کار کنه من فقط به طور تصادفی یک جلسه رو اداره میکردم. من فکر میکنم بیلی گراهام زندگی نامش رو به کل اجتماعات روحانی مسیحی مینویسه و میگه مهم نیست که من کی هستم بلکه مهم اینه که او کی هست. مسئله این نبود که من توانستم بلکه این او بود که توانست و این چیزی نبود که من میخواستم بلکه او میخواست. در نتیجه گیری نهایی این کاری نبود که من کردم. بلکه او انجام داد. حالا این رفتارهای زیبا رو درک کردید؟ آیا چالش‌های محتوای این متن و فضای موعظه بالای کوه رو ملاحظه کردید؟ من توضیحات بیشتری در مورد محتوای موعظه خواهم داد. اما امیدوارم که شما فضایی رو که عیسی در اون موعظه سر و کوه رو ایراد کرد درک کنید. به قول متا، مسیحی شدن مفهومش نیست که چه چیزی عاید شما میشه. این دادن چیزی به خاطر هیچ چیز نیست. نجات به قول دیتریش بانهوفر فیض ارزان هست اون فقط بهترین های هر دو جهان اینجا و در آسمان نیست متا میگه ایسای مسیح شاه شاهان و رب بلربابه و دنبال متیانی میگرده افرادی که بیان و زندگیشون رو تسلیم او کنن وفادار او باشن و بگن من میخوام بخشی از راه حل تو باشم بخشی از جواب تو باشم و مایلم به خاطر تو بمیرم همونطور که در معایزه سر کوه عنوان شد این چالشی بر سر راه مسیحی بودن هست. وقتی که این خوشا های زیبا رو مرور می‌کنیم ما شخصیت مربوط به مسیحی شدن یا جواب و راه حل بودن رو می‌بینیم شخصیت مسیحی چی هست؟ اگر این خوشا ها رو مطالعه کنید جواب اون سوال رو خواهید یافت من اونها رو به طور خلاصه بررسی کردم ما میتونیم برای هر کدوم از خوشا ها جلسه کاملی اختصاص بدیم که حتی در اون صورت هم نمیتونیم به امق حقیقت تعالیم اون خوشاب ها پی ببریم. کل کتاب مقدس این هشت رفتار زیبا رو نشون میده و به تصویر میکشه. تشویقتون میکنم که اونها رو بخونید و در اونها تعمق نمایید. وقتی خوشاب ها رو درک کردید بیشتر خواهید فهمید که اونها نمادی از شخصیت مسیحی هستند. بعد مثلهای نور و نمک، شهر، چراغ روی چراغدان و تمام تعالیم متا پنجوشش و شش و هفت رو عمیقام بخونید تا کاربرد این خوشحبهال های زیبا رو ببینید که تمامی اونها در تلاشی برای تأثیر شخصیت مسیحی در فرهنگ غیر مسیحی دنیا نشون داده شده در باب سوم پیدایش خدا از آدم پرسید کجا هستی؟ خدا میخواست آدم فکر کنه تا اینکه چیزی رو که خدا میخواد بدونه تا کاری رو بکنه که خدا از او میخواست بکنه تا کسی باشه که خدا میخواست تو بشه آدم جایی که قرار بود باشه نبود به این دلیل خدا پرسید کجا هستی خدا میخواست او جایی باشه که خدا میخواد باشه. ما از این اینگونه بر ما تأثیر میذاره. وقتی فضایی رو که این تعالیم در اونها داده شده میبینیم میتونیم همیشه بشنویم که خدا میگه کجا هستی آیا هنوز بخشی از مشکلات هستی آیا میخوای همیشه بخشی از مشکلات باقی بمونی یا میخوای بخشی از راه حل باشی آیا تا حالا نقطه اعطف مسیحی شدن رو تجربه کردید؟ دانشجوانه عزیز، امیدواریم که شما عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و ناجی خودتون پذیرفته باشید و متعهد باشید که بخشی از راه حل اون بشید. خداوند عیسی مسیح نقش خارق برای زندگی شما داره و می‌خواد شما رو به عنوان نور و نمک جهان به کار بگیره تا دیگران رو به نجات بخش خدا برسونه متشکریم که وفادارانه با ما همراه هستید تشویقتون میکنم که از دیگران هم دعوت کنید در این دوری مطالعاتی به ما ملحق بشن تا اونها هم بتونن بخشی از راه حل اون باشن امیدواریم آرامش خدا به شما قوت بده و شما رو در اتحاد با اون حفظ کنه و شما رو با قوت به کار بگیره تا شهادتی برای فیض اون باشین. آمین.